وقتی سقیفه در واقع روی کار آمد، کودتایی انجام شد، دو تا اتفاق افتاد. یک، بحث قصب مال حضرت زهران تحت عنوان فدک و قصب خلافت امین رول مومنین. این دو تا اتفاق افتاد. و حال که شما میبینید در بین این دو تا اتفاق فاطمه زهرا بیشترین احتمامشون در مورد مسئله فدک. خب این شاید شپه ایجاب بکنید که مثلا بانوی ازمای اسلام واقعا دنبال منافع مالی خودشون بودن و حکایت هدایت مردم برای اهمیت دادشون ما قدم اونیست که خلافت اگه دست امیرالمومنین بود این رو امام صادق علیه السلام بفرماید که اگر صریف اتفاق نمی نفتاد. اگر سقیفه اتفاق نمی نفتاد. هیچ دو نفری نبودن که در مسئله توحید با هم اختلاف داشته باشن خیلی اهمیت داره و حال که شما می‌بینید درون مذهب شیعه فقه ها شیعه عرفا را در عرفانشون نسبت به توحید تکفیر بکنن چون حال به وحدت وجود هستن عرفا فقه ها را به جهل و ناداری بکنن شما نفهمیدید توحید شیعه تازه نه درون یک مذهب هست حالا احل تسلونیش رو مطرف بکنی یا مثلا ازیان دیگریش رو مطرف بکنید ببینید چقدر اختراف در مسئله خداشلاسی وجود داره خب امام صالح پاید که سقیفه ایجا شد دو نفری نبوده که در توحید اشکال نداشتن و این توسط سقیفه قسم شد حالا هدایت مردم مهمتر است یا مسئله فدک چرا از در ذرا خطبه راجب فدک بخونه اما به حکومت خطبه نمی‌خونه. این چه اتفاقی داریم گفته ما بخوایم این ایمه هاو برطرف بکنیم اگر حضرت زهر ها ها به مسئله مالی میپردازن دلیل شدید که این مسئله حضبش برای جامعه سبکتره مسئله آسان رو مطرح می که اگر بتوانن اینجا حق امیر علیه سلام را بگیرن مسئله خلافت به طور قطعی در واقع حق احیا خواهد شد این چیزیست که ابن اول حدید هم بهش اشاره بکنه. ابن اول حدید به استادش بگه خب فاطمه زرا حق میگفت در مسئله فرق یا نه؟ گفتن آره. خب شاهدش درست بود یا نه؟ گفتن آره. خب پس چرا اونا مخالفت کردن؟ خود ابن اول حدید بگه استاد من خدی. خب پسر جان حالا تعبیر من تو پسر جان. اگر اینها در مسئله فدک کتا میامدن با اون شواهد و با اون استدلالی که فاطمه آورده است خب مجبور بودن که خلافت رو هم تحویر بدن چون فاطمه همون ها رو میبود اینا مسئله فدک رو ندادن که مسئله خلافت رو ندهن پس اگر حضرت زراسالان اللہ ها مسئله فدک رو مطرح میکنه نه خاطر منافع مالی، بلکه مسئله حلش آسانتره. از این راه که اغلائی و منطقی تر از شروع کردن تا به توانا انشاءالله نتیجه رو بگیرن که بود دشمن اصلا از اینجا هم راه ندار